بسم الله الرحمن الحمد لله رب و و در کتاب این کردن <تصفيق> دست هر جده دارده چاپ مرزوم آی رقبانی در باب نوزنان اقواب ما یکتسر مروض هست به بحث غیران و روایات رو خوندیم یکی مقدار رسیدیم به حدیث شماره 18 از کردیم حدیث شماره 18 به اثانی دیگه از سابقه فی اسباق الوضوع مرموم صاحب و یک بار این سمد رو آورده به اونجا ارجاع داده این الان هم در بحث اعوال از کرده همه سمدهش برده به صحیفات و حضابه نسخه نصف این مشترکات اون هست. و این یک توضیح یک توضیح اگر از کردیم اینا مجموعه روایاتیست که ناظر است به مقام ملاحم و فتن ما هم داریم سومنی دارن زیدی دارن در دنیای اسلام هست اصولا من عرض کردم مسئله فتن این مسئله است که در قرآن دوست دکر شده لذا همون زمان رسول الله و این مسئله فتن کار شدید واقعا کارو کبیان هم, هم اصلا فتن و فتنه و طبو فتنه لاتوسیبه و لدینه ظلمونی کن خاصه انتوسیبه همون فتنه و یوسیبه همون عذابون علیه مثلا یه احضر لدینه خالبونه نمره لذا بحث فتنه و حقیقت فتنه یه بحث بحثیست که ریشه قرآنی داره. در روایات ازده ایش آمده تو نهجور بلاقه هست ها نوشتن الملاخم و خیلی نوشتن ما هم داریم مثل مرموز سنی هم زیاد دارم یه بحث وقت مجموعه یه است که به اینها میگن مثلا قبارت ملاخم مثل اصلا در خود بخاری بابی داره باب الملاخم مثلا کتاب الملاخم داره اینقدر این باب کتاب چیده که در خود کتب جامعه حدیثی هم با اونم وقت ارز کردم در این کتابی که در روایتی که تحت عنوان ملاحیم و آخر زمان و چه خواهد شد یا مثلا خود زیدی ها که قیام میکردن زمان ما چی شده چی شده امر معروف نمیشه چنی شده اینها ها بعضیش توش مسئله قناع موسیقی داره بعضیش نداره اینم هم قاعده کلی به شما عرض کردید تو روایات ما داریم یکی همین شماره 18 و انت تتخیل القرآن مزامیر مثل مزما. این و چند که شماره دیگه شماره خود که دیگه نیم خود شماره 19 یک روایاتیست مجموعه روایاتیست که ایشون مرحوم شیخ صدوق در قیون اخبار رضا از بعضی از علمای اهل سنت نهار کرده این حسین ابن عمل بیحقی حالا با قطع رضا از مسادر اهل سنت از شخصی به نام محمد بن عبی عباد و کان به سما و به س از کردن یا مشتهرن چون سما رو اهل مدینه قائد بودن قالت سالت رضاقن سما و قال کامل اهل الحجاز فیه رعی رو درسته اهل حجاز او مدینه و هو فیه هی زلبات لبله و خواهی قرآن رو از رو خوندن سندش نقی نیست و واضح هم نیست کیه اما خب به هر حال معید مطلد و فی معان الاخبار مرموم صدور در معاندل اخبار از یکی از علمای مثلا قذبینی مدفر ابن جعفر علوی بد نیست اجمالا توضیح توضیح واضحی نداره اجمالا بد نیست این جعفر ابن محمد ابن مسعود این پسر ایاشیه همه از کم این سا پسر ابن ایاشی آثار رو از خراسان منتحاله خراسان هسته و اقند و به این طرف بردن. به طرف ایران و ایران عبی عبي همون عیاشیه عنا حسین ابن اشکیب خیلی واضح نیست محمد ابن سری عنا حسین ابن سعیب خیلی عجیبه ها این کتاب از مطلب روید از کتاب با حسین این همه دو روزه درفته به خراسان و آخر خراسان <تصال> تا باز رفیقه بگم عنا حسین ابن سعیب خیلی عجیبه واقعا چطور این رو دور خونده عنا عبی احمد ابو احمد در روایت ما محمد ابن نبی عمر معروفه در بعد در جهان محمد ابن زیاد آمده همین ایشان اسم ایشان محمد ابن زیاد که کنی اون زیاد عبدالقومه این علیه ابن نبی حمزه ابن نبی عمر موارد دیگر هم غیردیر از علیه ابن نبی حمزه نقل کرده امون به این نهیست حالا این قاعده معروف رو بحث کردن که آیا گفتن لا یقوی الا اندسته حالا چکار بکنیم؟ بعضی بس اینجا تخصیل خواهده الان آخر همه ای گفته شداره وقتی اگر وقتی هر دیم احتمال داره شده خود مرحومه ابن عبی عمریشون قبول داشته چون این توجیهاته بکنیم حالا فرصوی ابن فضال حالا نسبت نصف برای ابن فضال کنه یه بول که ایشون کرزاره حالا ابن عبی عمریشون کرزار نداره مشکل نداره اختلاف پرشه هست ای اختلاف عمریشون هست این چالش کار بکنیم در بیاردن اصلا خیلی رو شاهد گرفتن که ندوم روانزار خب اینم شاهد این شق میشه مرد فاسد مذهبی بوده ملعون رو در لعنش کردن لاکه در نقد در هم این نداره یعنی این مطلب خاصی نیست خیلی مشکل نداره بخدا اصلا چند صفحه روش بس ده. انا عبد احتمال برادر باشه عبد نظر شما خب نتیجتا تو تاووس پیدا میکنه مثلا توثیق در حیاقه با تذیه ابن فضل تاووس شده مثلا میشه مجبول خالص تاووس شده درش یا تذیه رو مقدم میکنیم برن علل ممره یا میگیم نه مجبور خالص یا به هر حال میگیم مثلا ما که اصلا دنبالمون به صراحت معنا مصطلح نیستیم میگیم به هر حال چون چیز وافیه بوده و بزرگ خط وقته احتمال میدیم روایتش مثلا پیش واقعه یا قابل قبول بوده مثلا یک توش میکنه بددل عللا اون وقت ساعت تو جبرن محمد در قابل لازمجر فتن با رس منال اوسام و شن با قول از زور رس من و بالا علسان از رستو من اوسان از و وقول از زور عب... و زور عب... رو عب... می. ام... این احتماد داره به اصلاح معوم های تواتایی دیان در تصیر از باب جی و تکفر باشه. بالا رسه می اوسان که بود فرسی دیگه اون هم قول زور قول کید. چون در زمان امام مصادقی شطفنج را افتاده بود اینا شاید امام اون ش ش ش به که در قرآن هست شامل شطرنج هم میشه و اون قول زوری که در قرآن هست شامل جناع میشه حالا از غیر سومنه من توضیحش از کردم این شطفنج که در اصلش احتمالا بوده چون ششترنگ ششترنگ یه صفحه ایز 8 در 8 64 تا سراح خونه داره و در این سر نصر سیار نصر سفید و قول خودشون مخواهد نصر و تا این طرف 16 تا طرف بازیگر داره این 17 تا به 86 به تخصیل میشن نمیدونم قلعه از تو وزیر از توش ها هست سرباز از و فلان از این شش رنگ گفته میشه یعنی شفرن ششرنگ اصلش هم در هند بوده از این, این آمدن این هم از کردیم وارد دنیای اسلام مستقیم نشده سالان زمان عمر اولا این در اینکه بعد به ایران آمده به اصلاح احیان و سلکنتی ها بوده دارن و هر این بازی رو میکردن بعد از زمان فتح ایران که زمان عمر شد مسلمان ها با این آشنا شدند اصل آشنایی زمان عمر از هم، از ها وقت محل کلام شد حتی مثلا به عمر دو جور رأی نسبت دادهن تفسیر ربی زیل ایه ناه یک ری دا که درست یک ری درست جاز و رام وقت از امیرالممنین نقل شده سنیام نقل کردن ما هم داریم سنام ما به الت و لها حاکفون ار کردم این شکلی که الآن شطرنج داره یعن مثلا شاه و وزیر و... از ا اسبش نه قلعش هم نه فیل اینا این محصول شاه به شکل بعضی بودها ها میخوره که در هنده هستن احتمالا امام مخاصر که رایست من علاقصان الان زمان ما شفن جمعی مراد اینه قول زور هم زمان ما بنا رو میگیره مثل قول زور قنار از زمان پیغمبر بوده اما رایست من علاقصان تطریقید که بعدش شده قل تو قول الله از درجه من نسوانیشتی لحور حدیث آل منهل قنار اینشاره عرض می کنی. این مطلب که من من نازمان اینجا اشاره بکنم بعد اینشاره توضیحات شده برعرض بکنم من من نازمانیش داری به حدیث شده این در مسادر اهل سنت هم هست ادهشون این نقل کلام که این خیلی مهمه آیا این کلام رسول الله گفتن ادهشون یا این کلام عبدالله این مسعوده یعنی به ابارده نقطه آیا این مرفوع مرفوع در اصطلاحشون حدیث رسول الله یا این موقوف مغروف موقوف در اصطلاحشون یعنی کلام صحابه اینطوری اصطلاح دادن میگه مثلا ربه علی بن ابی طالب مرفوعاً قال مرفوعاً قال قال رسول الله این معنا ای کنه یا ربه علی بن ابی طالب ربه علی بن ابی طالب موقوفاً موقوف یعنی کلام خود علی بن ابی این کلام اختلافی که داره که ای ای آیا مرکو رسول الله یا موقوف هست برای عبدالله و مسعود این مطلب مال لعبدالله و مسعوده اما در روایات ما زیاد داره کود دقیقه کنیم فور واسه همه هم داره اما در روایات ما زیاده حدیث شماره 21 و انعبیه صدوق انسعد ابن عبدالله ان احمد بن محمد بن حیسا ان محمد بن یحی الخضاست ان حماد ابن عثمان این حدیث سنده صحیحه هیچ مشکل نداره ان حبی الله علیه السلام قال سهل تو هم زور قال منهو قول رجل للذی یغنی احسن اگر این مقدارش قول زور باشه خود غنا به طریق قولا قول زوره بالعولویت القطعیه و فلمغنه قال صادقه علیه السلام شر الاسوال از غنا این شالا از کنید این به باید ظاهرن حض شده بوده تو مسادر ما فعلا به ما نرسیده و فرقصال این عبیه این سهد این یعبوب نیزی این ابن عبی عمر نکوم بی این مهران ابن محمد مهران ابن محمد رو میشه یون که توصیب اوهو به روایت ابن این مهران ابن محمد پدر اسماعیل ابن مهرانه اسماعیل ابن مهران ابن محمد ابن عبی نست سکونی پس هر توصیف شده اما فکر کن، آنل حسن ابن نهانی. و گفته شده کتابی داره که یاریه نه بیامید مهان نوازد. آل سامر فر با عبدالله آل سعیدر آل رناء نفاق و یا عتبال در کتاب مجازات و اخبار محمد بن الله حسن، می‌شوند تعلیقشانه. محمد بن الله حسن شیخ توصی. به مجال اخبار معروف است به اسم عمالی نرمونش توسید از عمالی همه عمال احمد ابن محمد ابن سلح احوازی از مشایخ ایشانه توسیق واضحی نداره اما خب چون استاد نجرشی هم از استاد ایشان و واسطه از بین ایشان و بین ابن عقده و شیخ فرمونه که من اجازه ابن عقده به خط ابن عقده بین آقا دیدم که دیروغه خط خودش اجازه داده. آن جابر بن عبدالله علوی را از مشایخ کوفه هستند که احتمالاً زیدی هم باشند. سرخش سخن آن قاسم بن جابر بن عبدالله ابن عبدالله بن محمد بن علی علوی ان ابي ان الى ان محمد بن عمر بن عمرو في حدیثه قال دخلت على ابو عبد الله فقال حلقهنا اشتغل الغنا اشتغل اول زود احتمالاً این شخص تو در مدینه بوده همایولی به قناه داشته و مازال یهول اشتنه بود قناه اشتنه بود خب اینم سندش این مقدار ابهام داره لکن از کتاب ابنو در سنین در گردی تراس ابنو الفضل ابن, ابن عبدا. عبدا حسن تبرسی در کتاب مجموع بیان قال رویه این عبی جعفر و عبی عبدالله و عبد حسن رضا فی قول الله از در من ناس منیش داری لحظه حدیث نه نهان قالو من حلو جناب ارز کردن روایات ما که تفسیر شده این نسمن زیاد یعنی یکی نیست باز علی بن ابراهیم پی تفسیر یکی راجع به تفسیر مفصل صحبت کردیم این... این که مال علی ابن ابراهیم باشه قطعاً نیست اما حالا یه مرزار زیادیش قطعا تفسیر علی بن ابراهیم سند واضحی ندارد یعنی سند واضحی بین معلف کتاب علی بن ابراهیم نیست نه بین این کتاب به ما در بینید بینید ما و این خب این مشکل داره اما بین محلف کتاب چون محلف کتاب شاگرد علی ابراهیم نیست. محلف کتاب یک نسخه از کتاب تفسیر داشته به نسخه شازی نسخه معروف ندید توضیحاتش رو مفسره از ارز کنید جاش اینجا نیست انا عبی هنه ابن عبی عمر هشام حشام انا عبی عبدالله اگر مشکل در نباشه یعنی واقعا از تفصیل باشه این سند صحیحه مشکل نداره لیکن اشکال کرده مستر فرشتن با ریس سمنال اوسان مشتنه با قول از زور بالا از ریس سمنال اوسان از شطرنج و قول و زور علقنا به قصد بکنید یک مطلب رو من کرارن سابقا از کردم روی مطلب بازشک بشه ما اصطلاحی داریم اصطلاح خود برده است. مصادر اولیه، مصادر متوسطه، مصادر متأخر. مثلا مصدر اولیه فرض کتاب هشان بوده یا کتاب حریذ بوده. متوسطه ما اینجا کتاب ابن عربی اومیده. مصدر متأخر ما مثلا کتاب کافی کتاب صدوقه. دقت می‌فرم این چیزی به نظر ما ارزش داره. ان شاء الله اگه جای دیگه من توضیحاتیشو مثلا تا اینجا که ما نگاه کردیم در کلیه یه روایاتی که از کتاب ابن عبی عمر بود حرمت ابن بود هیچ درش بحث نازم و در چند تا روایت کنار کردم از کتاب حسین بن سعیب قال مثلا سمایت سمایت سال فالدو فع همه عجر نائه مقنیت فکره هر بود یا مثلا ریت به عجر بپرام الاسی تذخل عرارس بحثو. تمام این ها از که ها حسین سعید بود این مستر متوسط لزنیتون باشه این خیلی مهمه معلوم میشه مثلا ابن عبی عمر کلن اون چی که نغل کرده در به اصطلاح هرمه کرده حدیث شماره 27 تقدم الکلام مفید جزو عشاط و ساعت تقدم الکلام از تو قبل سمت حدیث شماره البته ایشون نمیشه ان عبی هم سلیمان تو عشاط سندش شکوش سنیه هم داره و همون ابهام کلی در تفسیر حدیب نداره مرموم ایاشی سنده 28 مرسلن ان جابر ابن عبدالله انصاری جابر ابن عبدالله از پیغمبر حدیث در غنا داره میگه من نایی کان ابلیس اول منطقه اول منطقه نام. این دواله ای ای درست باشه میخواد به یه غنا از همون سابقه قدیم داره بهش هستن و اول من نه لما اکل آدم من شجره. آبی اخر و اول من نه لما اکل آدمو من شجره تقرن. فلان ما اینجا حبت نوشته حبت حوالی لیل از ناهل ذکری مافین یعنی این جنبه ی باطنیه جنا و نوه. نوه هم ولش شیطانه جنا هم ولش شیطانه. و عمل حسن در کتاب عیاشیر حسن نمی شده کن توتیل القبود فی المحرش قناع بعض الجيران قال فدخل فعلا عبی عبدالله علیه انسان فقال یا حسن این نسمع و البسر و الفؤاد کل اولار که کانعن ها مسئولا آل برجه دین حدیث در زیل آیه قناع بودن ربطی با یه قناع نذاره او در این زیل رو و ما و آ و البسرو و ما را آ و الفاظو و معقد علیه خوشن شد بله، این مطلب که انسان همین که استماع هم بکنه اونم هم حرامه همین جهتی که در اینجا هست این طور رواحی دیگه هم هست که بعد میخونیم اینشالله تعالی حالا این شماره 29 از... حالا اینجا که به اسم حسن آمده ما به استماع از غیر حسن هم داریم باب صد یک باب و تحریم سماع الغنا و الملابی این مناسب با اون بابه در اونجا داره که این روایتی که اینجا داره در اونجا هم آمده که مثلا درداره که اگر انسان سماع بکنه حرامه دیگه های دیگه هم دیگه داره که بعد ارز میکنم از کتاب جامال احادیث تحرز میکنم شماره سی هم تقدم کلام فی سریع که انشار رو باته تمام شماره سی هم تقدم و فی. شماره سی و دو علی یبن جعفر فی کتاب یعنی اخیه مونسد جعفر سر توان رجویت هم مدل جنا یعنی سوئله قال الله البته از ایشون در فرح و ایده از ها و فز مال ابن نه تو جایزه. لیکن این کتاب علی بن جعفر مقدمه کلام که تکرار است. از باب صد که باب استعمال ملائکی باشه مرحوم کلینی من عدت بن اصحاب نو عن پسر عن عثمان بن عیسی عن اسحاق این جرید با شواهد قبول شد. قال سمعت صحابه عبدالله یقول این شیطان نیغال لهو که حندر نمیدونم زفر کرده برای اسم شیطان دیگه باید به فیر منزل رجل اربعین سواهند بربن و دخل الرجال و و که شیطان کل عزب منو علا مثلی من صاحب البکت مطلب لطیفیز که که اگر انسان مستمرن گوش بده جنا در او اصلا سطحات خوبش رو میبره شاید انسان شما میغرگیده که من جلو گوش دون این سم نفق فیه نفق فلا يغار و بعدها یا فلا يغار بعدها حتی تو تا نسا او فلا یغار خیلی ارجید این هم از احادیث در جوید این مطلب در چند تا احادیث دیگر هم آمده این شد در حدیث شما در دو انه هم انسحل ابن زیاد ان محمد ابن ایسا که یختینی انه ابی داوود مسترد ابو داوود مصطلح واضحی نداره هم بد نیست اما تقریبا در حالت اصلاح مها مدا مثل حضورم مدا مستر یعنی یسترق القلوب قل قلب ها رو, افراد یعنی رو به لطف میاره موابد میگفته الفاظ گیریش رو میگرفتن مسترد اصلاح اینه استرق یعنی قلب ها رو رقیق می‌کنه بله ابو داوود مستر قال محبوب زره به فیلتی و دربطون هر صبا هست صلی الله علیه و اینجا احتمال داره خب او این کلام مال خود عبو داود باشه مال امام هم بحثی کنان هست کرد اینجا داره نوز امن هول حیا ولب یوبال ماقال ولا ماقیل فی درست هم از این موسیقی در جرد انسان این تأثیرها رو داره این هم شماره به اصطلاح دو شماره سه این روایت شماره سه به هم آمده به پیغمبر هم نسبت داده شده مرهوم کلینی سنت خالی از اشکال نیست ام کلی به سیدابی دیگه نیست بخواهد بخونیم قال سمعت و ابا عبدالله یه بود غربال ایدان یون بتون نفاق فلقرب کما یون به تو ما علم خروره هم اینه اصلاقی دیگر رسول الله هم برد باز دیگری هست از حضرت سجاد با قطر سنت قال لا یقصد سلاح و امت فیها بر یقه قم زارن و نایتون و فایتون اینجا نایتون نوشته تا بعضیا برزی نوشته نه صحیحش نایتون تفجه یقره یعنی یک تا اش افتاده فیها بر بر بر, بر که همین چیز به صدا تاری که میذارن این قره صدا می صدای تارون و نایتون نای یعنی نایت بشنو از نجام حقایت من اینه یه خودمون تفجه یکی اشمال اجناس یکی اشمال نایتون تفجه ای تتفجه یعنی با نیخاندن حالت حزن با نی حالت حزن ایجاب میکنم این تایه نوشتن فایه نوشته چیز دیگه نوشتن صحیحش نایتون تفجه ای تتفجه باز هم سندی روایت رو نمی کنه که طریق تعلیقش زیاده سند روشن نیست ابهام داره بلکه تو شیخونه و زانو داشته باشه چون احتاج به وقت طولانی داره فعلا اینا وارد نمیشیم عن سماعه قال لما قال ابو عبد الله آدم ادم شمت به ابلیس شمت ای یعنی مسخرش کرد سر سر خود و وقابل فجتمه فلعن فرجعن ابلیس وقابل المعاذ ظلم ملاهی به آدم به نظر من لما ما همین فکر شما ابن آدم وارد بشه هاویر وارد من عذاب نشد ولی او آدم ابن آدم در نهو قال و و آدم به پسرش دیگه در اجل این کتابی که اونجا هست فروع کافی دیدید در خود مستر ملازه کنیم همینطوره آدم داره به نظر ابن باید باشه به نظرم ابن شخصده ابن آدم شما طبیه ابلیس و قابیل فشتم آفل عرب و جل ابلیس و قابیل المعازف و الملاهی شما هم به آدم به پدر خودش رو ازداره کل ما کانفل عرض من حاضر و لذیه کل ازدار به ناس این از همون دنباله اونه و اون اموزه قابلی و حابلی و انه علی ابن ابراهیم چماره شش همون سند سکونی معروف ان سکونی انه عبی عبدالله قال قادر رسول الله انه ها کنه انه زفنه زفنه رخته از که از سابقه هم ما همین رباطه واحده رو داریم که در کتاب مشغوله همین رباطه واحده داریم که انه ها کنه انه چون ازده قبول دارن ازا باستن زفت میشونی نفسی حرامه مثل رقصی نفسی حرام مثل قنام لیکن ما از کردیم و سکنون قبول نداریم این یک و انشاءالله الان ارز بکنیم که غیر کتور مشبوره همین رویز آمده لیکن انها کم انه زمر زمر نزمار از لب و فیلی نزمار انها کم انه زمر الان هم نمیدونی گفت چون ایس خاید حافظ محضور دارم آن نمیدونیم در نزخه اصلی در کافی الان زفنه این معنیش رفت همون در موسخه دیگری که داریم در کتب غیر مشهوره زن روی زب و میم و را همون زمار رو همون مزمار همون نایی که درش میخونن دقیق میکنیم لکه اون, وخ... اون مزمار هم برد داره اینجا داره انهاکون ان و همون زم روی و همون مزمار اونجا زن رو داره و همون کوباب و کبران این هم سابقا هم به توضیح خود هم کوبه گفته شده که این کوبه نو تبله تبله مخصوص مدرس جنس نو تبله جنس کبرات هم محل کلامه احتمال بسیار بسیار قوی داره که این دو لفظ از ایران یعنی فارسی باشه کوبه کوفتن به ازلام و کبرات هم زبط کبرات هم شده زبط کنارات هم شده که این کنار بوده زفت کرانات هم شده خیلی زفت این کلمه مختلف. ظاهرن علا کله ها لفظ خواستی ظاهرن این حدیث حدیث معروف سکونیست و حدیث سکونی آهدیس دیگر داره که به نظر ما همچی خیلی دوشند نیست علایه. حدیث شماره هفت باز هم مرهوم کلینی همشه سند حدیث اشکال داره انه امران زفرانی انه ابی عبدالله علیه السلام قال سلامت ابن خطاب هست که توسیق شده یا تذکیش هست من الله علیه به نعمت فجای از تلکن نعمه به فقط کفر یا کفران نعمتی هست مرحوم شیق صدوز به اصنادی انه همماده سند تا همماده و انه سبن محمد انعبیه یکیه به که همه هم همان نمازه مش مجاهید که کلا نمی از سونیان هستند اونها هم می نشستن سونیان می این سند دو تا یکیش منتهي میشه به حمزه بن عمرو انا علی عبد دیگه به منتهي میشه به اثر بن محرمه انا ابی انا علی عبدالله ایشون ایشو بر اساس اون جذب شده پی وصیتت نبی به علی علیه السلام پی بحث اول هم اثر ما مجموعه وصایای نبی علی علیه السلام یا علی ثلاثتون یخسین القلب قصفت قلب استماع و لحب و طلب و سید و اتیان و باب سلطان مطلبش درسته در کتاب مغنه مرموم شیخ صدوخ فتوای مغنه وجتن بالملاهی و لحب بالخواتین اگه مجلن بازی رو آرامده وله 14 از و ازترس اینو بازی بوده شبیه نرمی و کل قمار فیر نصادقه یا صادقین علیه مسلم نهو انداله اینجا اعتبار داره ملاحی در اینجا از باب قمار روشه فرگون موسیقی به قنا در کتاب اون اخبار رضا، به نسخه ای که بر میگرده به صحیفت رزا که در درست اول اینوز خوندیم این هشهر نسخ صحیفت رزاست حبدالله احمد تایی هن عبید هن رزا یه حدیث شامی انهو سهل امیر المؤمنین از معنا هدیر الهمام راعبیه اینه همون کفتری هستن که بر... بر... بر... پرشون قراشون برگشتی ها پاهاشون رجدشون برگشتی ها پاهاشون برگشتی ها پاهاشون راعبیه شون قال تدعو على اهل المعادف و المزامیر و الیدان حالا این احتمالا جهت باطن معنا باشه و خاطر این که مثلا اونم صدایی دارن این برزه دونست توی یکی از روایت دیگه تتمم داره اینا چی میگن و فرخصال ان محمد بن علی ماجیده بک ان محمد بن ان محمد بن احمد ان سیاری رفعه دیگه مسترشم کتاب نازال حکمه و سیاریم که ضعیف ان عبی عبدالله قال انهو سوه لعن سفله قادم تست و قال من یشغل خمر و یه را وجد تنبور اصلا هسته مانده بجرده روایت دیگری که ایشون داره اینم اشکال سرخالی از اشکال نیست ازدن به نو بکاری فرموندن یا نوف یا که اشارن اشکارن او شاعرن او شرطیگن او اغریفن او صاحب ارتره و یا تنبور او صاحب کوبه و ترد معروب نیست کوبه مطلقه ترد باشه از کردم اشکالی انصافاً کلمات کلماتشون در زبطه کمی خالی از اشکال نیست بعد بسته ای داره که حالا آن مخواد مطلبی داره بعد فهموندن که ورامه نوی فراز فی کتاب یه قال قال علیه السلام لا تدخل الملائکه بیتن فیه خمرون او دفون او تنبورون او نردون این معروفش اینه لا تدخل الملائکه بیتن فی کلبون او بولون او اناون فی بولون او بیتون یو بارو فی این در ساله هم فرزی بسیار مختلفی داره و اونجا هم شدیم. که مثل این و رو اهل احسانت قالبا نه دارن این نهوه مرسن حدیث شبایه چهارده علیه بن جعفر که کتاب یاد اخی موسیٰ ابن جعفر قالو سر تو از لعب بر بر تحشد و شبه قال لای یستهب یا لا نستهب و شیع ابن غیر رهان و رن تیراندازی اندازی و از سواری و اینا مصابقه دارن مرحومه توصیفی مجالسی انا عبیه. این جنره چه حسن و محمد حسن کسر شیخ توسی معروف است به مخیل ثانی ابو علی علی حسن کسر شیخ این مجالسش با مجالس مرافلش طبال یکیه این ابیه این ابن سند از طرح شیخ توسی از ابن سند که از مشایخ بغداد موجه احتمال هم داره صدنی باشه این ابن اغده این علی ابن محمد حلبی البته اینجا ایشون حلوی داره در نسخه دیگه حسینی داره ان جعفر ابن محمد ابن ایسا ان عبدالله ابن حلی این هم یه نسخه دیگه از طریفت و رضاقه ها هست ان علی ابن موسا الاخره این کتاب های طریفت رضا ارز کنم کل اینها را کل را بدون استسنا مرموم شه کلی هیچی چیز نگه بود این هم راجع بین خیلی از روشت سنگی نداره باب بعدی که آخری باب محفظ ابن یعقوب نظیر ابن, ابن, ابن محبوب نظیر خیلی خوبه مستر متبسرش کتاب ابن محبوب این انبسته اجمالا بزنیستن ابی عبدالله قال استموم اللحب یوم به تول نفا کما ما دیگه هم داره که تازه حدیث شماره دو بله معوذ به ابو عبید خذاب و اثری از طریق سهل بن زیاد قال ات اذا نزل نو به المدینه فاتینه ابو عبد الله قال ای نزل تو فقلنا الا فلان صاحب قیار تیده یعنی کریزایی که برای غذا خرید فروش میشد فقال خود کرامت اقلن بزرگوار باش خود بزرگوار کریم بزرگوار ثعلله بزرگ ما ابن ما اراضه عبارت دید مراد حضرت چیه؟ واقعا نا انه یقول تفضلوا علی یعنی مثلا به این مد خوبی بکنید هدیه بشید اونو کرامت بزرگوار باشه. فعد نا علی بعد روز بعد خدمت حضرت رسید تا قلنا الله نزدیم ما عرفت القول که خونو کرامه یعنی چه خونو کرامه گرفت حضرت شما اما شنید تون قول الله از رجل یهود اضافه من رو به لغوه برو شراوا رفت وقتی خونه کردید توشون سالخونه مغنی داره جایی داره که شما گوش ندیم به رفتان کنو کنام هست رضاق مروفه نه من مر روی کنام تو اون خونه کنام سعی سعیفه به صدای او به صدای او گوش ندیم به قنای او گوش ندیم باز حدیث شماره سه باز هم اشکال استر سهله اما عبر حسن ظاهرش حضرت مصدر جعفر احتمال از رضا من هست من نزده نفسه و امرقنام از کردیم در مجموعه یا که ما در همه ابواب داریم گاهی اوقات یک ملاکاتی یا یک بود. مثلا ریشه هایی رو برای اون مطلب یه که برمیده به قدیم یاد. مثلا در اصل قناع از ابلیس بوده ابلیس این کار کرده، و گاهگاهی هم در روایات آثار اقربی بوده اکتر میشه از کردیم به طور آثار دونیمی داره آثار آلم برزخ داره و آثار اقربی هم داره مثلا آثار ودودیبیش و عقل تلخه یون به طور دفاع قیرت رو ارزش سرد می‌کنه انسان پست میشه این آثار ودودیبی این من نظر نفس و عرل قرار بنید فئن این آثار اخروی است این حجر عمل در روز قیامت هر در روایات ما خیلی مراعات شده فابن پیشل جفتی جزئی امور الله هم وجل اریا ان تحرکها یعنی خداوند در مقابل اینکه در دنیا خناره مشنی، اون جناهی واقعی و صوت واقعی که هیچ بدی توش نیست مثل که در دنیا خمر نکنی اون خمر واقعی رو در بهش و میده انتو هر رکا فیست من من ها صوتن حالا لمی اسمن مثل هو یا لمی مثل هو شاد باشه شاد بهترش لمی اسمن صدایی کهیش خودم از موغنی ها رو مثل هم ندارم و من لمیتن از ذهن کسی که در دنیا قناه گوش لب لم یست معهول اون صدای روزه رو گوش نمید که خیلی مضمونش لطیف بیاده. اما مضمون خیلی لطیف دید در روایات ما کلن از پیغمبر از در قرآن هم از پیغمبر بگیریم تا اهل بی این اینطوره یا آثار دوریویست یا آثار دردخی و یا آثار اخروی یکی از آثار اخرویش اینه من نمزه نفسه وانه فانه جند جننه شجره تا يعمر الله عز وجل تحركها فيسمع منها صوتا يسمع مثله ان بهتا و لم يسمع, يسمع حديثه شمالي شهور سندش بد نیست الا محمد بن شناس چون احمد بن محمد بن نقل كذا يشون فوق العاده چون ارس کنم احمد نوانیسا آثار کوفه رو به غم آوردن از این کتاب ابن سران که ایشان به غم آوردن و چرا احمد فوقل آده جیل رو قدره فوق العاده. احتمالا شواهد سرق در حدیث پیدا کرده کلینی هم بعد آوردن قال قالی ابو عبدالله انا کند کجا بودی فرما تو اناو قدر عرفن موزه از فرمیدن که من کجا بودم فرما قلت جایل رو فدا که می کند و فلان و دخل تو الار داره و نظر تو الار جواری البته این نظر به جواری متعارف بوده چون جاریت مواش بیرون بوده در اون زمان مثل ظاهرن این چیزی تو حدیث حضب شده فقط نکنیم نظر به جواری المخدمیم از مثلا خوبی نکشه رو دکت بکنیم این ظاهرن یک چیزی از مدنه حدیث حضب چرا؟ چون درست نظر به جواری اوتاره دو فاصله نظری به شهر کرد از سچول و جمعه. لاکی مراد نباز این باشه. چرا؟ چون مردم کلینی این روایت تو باب جنا آورده. این روایت کلینیه. من اینو چند بار دیگه هم ارسلم خوب دقت بکنی گاهی اوقات مردم کلینی حدیثی توی یک باب میاره، حدیثی که می‌خوره تناسب با باب نداره. لا تناسب با باب. درسته؟ باب باب جنائه؟ وقتی نبرد تو جواری؟ لذا احتمال ویدیو ها حذف کنده مروهم یا یکی ازش افسوده مثلاً صفحات فن. فنواعد فیلاجواری یعنی نواعد فیلاجواری مخنیات یه نکته خیلی لطیفه حالا چون چند دقت مثلا ابواب کافی در وسائل چی شاپ قدیم جننه وردن ابواب کافی رو خیلی دقیق چون گاهی اوقات اگر اون عنوان بافت نباشه سن حریصا نمیفهمه حالا مثال‌های بهتری داره حالا من اینجا مثالو اصلا اگه ما عنوان با بوزنیم کنار اصلا من حدیث نمیتونم این داره مرموم کلینی این کار رو میکنه کار خوبی هم جز به هر حال و نظر تو الانجواری بلاحاظ خود حدیث ربتی به قنا نداره بلاحاظ خود که بلاحاظ کلینی که در باب قناه چون حدیثی از دیگه باب قناه آورده قائدتاً باز مربوط به قناه موشه چی شیطوره خلالی مجزتون داره چطوری دعای مجزتون و افتبال تو اندهو قدع موزه تو خود تو کلا مرد تو فلان تو دارد و افتبال الگ جای زنده فرمانید این دقل که مثل مثل مثل دیده بودم مثل دعای ما ذهن من چه از که می کنم؟ تو متن اصلی یک چیزی بوده که به جنا رفت داشته بقید بکنیم بلا شعن مرحومه کل... کلینی عجل در اینه حدیث و در در از که در از که دمها در جاهایی در کتاب کنم مثلا بابو مثلا القراءت و فبرکو مثلاً این, مثلا این تو داره بابو من داره سعظ ابا عبدالله انها مثلا حدیث اینجوری است خب انها که من را داره سعظ ابا یعن انها این حدیث رو بدون عنوان باب معنا نمیده. اصلا بایی شده من دیدم در کافی یه نکته ایز برای شما خیلی بیفته که گال عنوان باب اصلا به با حدیث نمیخوره ظاهرا یک چیزی هست اشترده که مثلا ای بوده یا نسخه دیگری داشته اشون شواهدی داشته که از نسخه مثلا جاریت مقنیه بوده شادم مجلسون, مجلسون. مجلسون لا یغزرالله عزوجل اله اهله امن تالله علی اهلک و مالک یعنی مصری بودی که خداوند مال بهرسو از این اهلک ما مالک خب مثلا مجوزی که حرام مجر ذوال نعمت که اهل شاد احتمالاً نظر به خود چون در درو داره کسی که نبر इलाज صادناست نبر ناس لا مثلا اهل इलाज وجتی این شاید به این جذب باشه و احتمال هم داره که یک روایت دیگه داره که کنتو پیشی پیشه بازی امام شد توی یه مدینه بازار سو فرسو گرد فیلوکان و خاضی از فران از فرانی رفیق من پیشش نشسته بود نظر فرمون اما یکن زلال عذاب این امنت احلک و ماله یعنی چون این مجلس مجلسیز که اون که کسیش عذاب بیاد ملطور هم شامل میشه تو حالا دقت داشتی یا نداشتی حدیث شماله شماله اندر حسین و محمد این حدیثم مشکل سندی داره و رو برمیگرده به اینجا حسین نوشته آدم باید حسن باشه حسن ابن علیه نیختی سه اما سند قبل مشکل داره این یک روایت امومیت قال من اصبا الان ناتقه ام فقدر عبده هر کسی که صحبتی روی انسان بونگوش بده اونو عبادت امکانن ناتقه یعن الله فقدر عبدالله و امکان آن ناسقل و یادی عن الشیطان فقد عبد این معلوم نیست مربوط به گناه باشه مربوط به فکر مقصد فسی المذفه فسیای خاص به هر دوی کمونیست باشون اطاعت خدا هر کدوم به قران باشون ظاهرا مراد اون باشه حالا ایشون اووردن اما ظاهرا مراد اون باشه رفت در باب دو ایشون در باب شطرنج اوردن لکن بعد در اینجاست و اینجا است داخل باب 102 حدیث اول محمدالنیعو، این حدیث هم به نظر ما سندش معتبره. سال جواب عبدالله، قول لازم است، تشن ورز سنا و قول زور عالم ارز سنا از و قول زور عجنا. بعد باز دو دمرته در شماره سه از ابن عابدی اومید، دکتر فکن، هن از اصحاب ابن عابدی این هم همون مطلبی رو که از که می‌دونیم. در اون به اصطلاح در اونجا کلمه به اصطلاح به قول زور به غنا جنا به نظر یه روایت دیگه هم داشته باشید نه. بل این مجموعه روایاتی که ما الان در کتاب وصفانه داشتیم مرورت این امده ی بود یاد روز بخدم خوردن زاهر میشد فردا انشالله شاء الله شروع یه ده از روایات چون بعض از روایات ابهام داشت این در کتاب جامع الاحادیث هم به یک جور دیگری از مصادر دیگری انشالله فردا تکمیل کل بحث روایات و از کتاب جامع الاحادیث و کتاب اهل سنت همین نگل اوتار اتاره که دیگه فردا بحث روایات رو تموم بکنیم که نبیه فقیش هم واضحه فقط اون بحث استثناء و بحث کنیم بقیه خواب جا داشت صلی الله علی محمدین شده؟ گفته شده. آیه حامد آیه باشید یک کاری با شما داشتند اون خوده تحرور که اما عمل تو را جوزا بندارش هم میدونم دامن خود ایشون داره چون دیگری بحث که اکیش دیگر ایست که کسر برمسر در که اوه رو نیست این اختلاف داره. ازدهی شویه همیت مثل اوه ازامنه ازدهی شویه خود آقای کنونی که ازامنه نیست ازدهی که هشتیر نگیز به هر مسئلی قابل تعریم یه دیگر ایشون حرامه میاده شده نه روایات این هست که که محبوب قد سردگی خود به حرامه شده نگاه کرده انصافم یعنی من که اعتماد هم که مثلا حضر چونان را که قطعا تنگیری هستم در مقابل تمام اینا فضای محسبه سماهات از در فضای عجل مقبی آنها فکره بودن چون در محابل تمام اینا اقام هستن یا مثلا عزت سجز که می داریدن که عشقار و زمد اینا و خیلی زیاده دیگه جای شمه نداره هم ناشمه